با رسانی ما در آوازه برنامه من فرموش کردم از خدمتون آدرس اینترنتی ما www.radiofahang.ir هست و age هست درست چه گفتم؟ ایر اگر ایر, ایر, ایر ایران بل بل ایر <تصفح> بله بله ایر حالا شما اجازه انگلیسی بله باشه بگید دات ایر ایران بله البته تلفظ درست ایران ایران هست ایش. در کردستان در پاکستان افغانستان خراسان ایسو پارتیسان همون میگن ایران ولی فعلا شده ایران و این این آی آر میشه ایر دات ایر بشه بهتر بله یعنی ایران یعنی سازا میفوتانو سازا میفوتانو بعد شما از طریق محوارا میتونید به عدیان که خارج از کشور هستند بفرمید برنامه های ما رو پیگیری میکنند برنامه های شبکه فرهنگ رو پیگیری میکنند روی محواره هاسترد شما میتونید بخش رادیوها رو پیدا کنید و رادیو فرهنگ اونجا هست میدرخشه شما اونجا رو بیارید و برنامه های شبکه فرهنگ رو بشنوید خصوصا برنامه ما رو توصیه که بفرمایید تبلیغی میکنم قصه برنامه خودم خب من در که بسیار زیاد هست خیلی متنوع هستش من حالا ببخشید این یه... خیلی برای من جالب بود که آقای دکتر جاندی گفتن ما تعدادی دانشجو هستیم دانشجو فوق لیسانس هستیم لیسانس فوق و لیسانس دکترا همه دور هم جمع شدیم هر کدوم هم رشته اما برق میکنه باید. اما شاهنامه وسط حد بداریم شاهنامه رو میخونیم آفرین. آفرین به شما دانشتیانی که را الان این در خوابگاه باشن چون من در این کار رو در خوابگاه دانشتیان آغاز کردم سالها پیش وقتی میدیدم که دانشتیان نمیتونم روهای توربیان من رفتم میرفتم به خوابگاه و اونجا شانمخانی میکردیم اون وقتی که بچه ها شب بود برگشته بودن از دانشگاه ها و شامشون خورده بودن میتونستن که پای پیاده بیان به مرکزی و شانمخانی میکردیم سالها پیش این کار رو می‌چاتی. دیگه حالا نمیتونم برم برای که در بنیاد جمهوری کلاس‌ها خیلی زیاده و شاهنامه‌ هم در در بنیاد یه شاهنامه‌ای هم که در رادیو فرهنگ داریم دیگه نمیتونم ولی من از اونجا آغاز کردم. می‌بینم که جوانان ایران، جوانان بی‌دار ایران اینطوری دور هم جمع میشن و به شاهنامه گوش میدن. جوان ایرانی با شاهنامه راه فرخسانه آینده زندگی خود رو پیدا درود بر دکتر جنیدی شما آیا بهتر نیست کتاب راهنمایی زبان و کلمات اصیل فارسی جهت صحبت های روزانه مردم ارائه دهید؟ این کار من در گفتارها خودم و همه دفترهای و نامه که نوشتم کردم مثلا همین شاهنامهی که بیرش کردم پیش گفتاری در قطعه آچار داره که 480 صفحه است و یک باجه خیلی ایرانی درش نیست و زیر که بر شاهنامه دادن پیرامون دو هزار صفحه قطع روغی همچنین خب من به این ترتیب دارم آموزش میدم به جوانان بیداردل ایرانی که با های خارجی با کار نگیرن و گفتارشون گفتار ایرانی باشه اما یک کار تازه هم در دست داریم که چاپ سوم داستان ها روستن پهلوانه که برای مثلا جوانان و نوجوانان خیلی مفید خواهد بود در اونجا همین کار شده من با نویسدار خودم این آموزش رو به فرزندان ایشان میدم آقای اشرف عزیز از فولادشر استادان دیگه اگر نقدی دارند بر برنامه یک شب شب های ما با تقاضای دکتر جونیدی می‌فهمه اونها هم مطالب خودشون رو میگن ما اینجا در برنامه پنجره های رو به آقای دکتر جنیدی اندیشه و های خودشون رو میکنن اگر قرار هستش این اتفاق بیفته یا قداوتی بشه، ما قداوت نمی‌کنیم. هر کدوم از اساتید نظرات خودشون رو می‌گن. استاد استاد استاد آره. همین نمی‌خواستم کنم، یادم رفت. نمره‌ای که اسلاید می‌آره. یا همین برداشت درست بعد دکتر جنیدی داددوه و چه شکلی بوده؟ و چطور صدایی داشته من که گفتم که بانگش چنان بود که از دو فرسخی سپران دشمن از سر خوشت رو آب شکلش نه میده چه چیزی بوده خدا میتونه منم از کتاب پادر رو بردم اونا هم از هیاهو و بانکش همه صحبت کردن نه از شکلش خواهش کردن یکی منبع برای آموزش زبان عوستایی معرفی کنید آیه محسن از فهندج. درود بر شما ما پیشتر یک کار از عظیم میکردیم اون فرهنگ باجه های است که در زیر هر واژه در حقیقت گناه های مختلف و صرفی و ریشه های هر واژه رو دادیم این برای کسی که در سطح بالا بخواست زبان عبستایی رو یاد بگیره خوبه برای کسانی که تازه آغاز میکنن مشکل مینه اما ما این رو برای زبان پهلوی کردیم من کتابی نمیشتم بنام نامه پهلوانی که آموزش چه خط و زبان ایران پیش از اسلام یعنی خط پهلوی اشکانی و ساسانیست است اون رو شما میتونید بخونید از اون یورش بخواید براتون میفرستم اشتباه گفتم فهد ریجان ببخشید پیامکو بعدش شد خیلی حروف جویی هست داخل همدیگه در هم میره منم عینک زدم با توجه به اینکه عینک زدم که چه شان درست نمیبینه. ایشون رابطه این که آدم فخینج بین سمتی خیلی هم بد آدم نمیتونه به خونه آقای دکتر. خیلی هم سخته. بعد از دوم واقعا کهنه بود. بله صورتش صورت امروزیش پیدا نیست. خوب خب ادامه‌ی داستان رو بفرمایید. تا یه بخشی که ما البته زمان زیاد داریم. اگر بفرمایید که اگر به خاطر تون باشه فرود زر است دست فرود کشه شد زر است توس بود خروشی برای آمد از ایران سپاه ز سر برگرفتن گردان کلا یعنی به عنوان ما سوگواری تو دل توس پرخون و دیده پراب بپوشید جوشن همان در شتا مبینید که سپاه ایران به طرف توران داشته میرفته با اینها چون تو کشور بودن لازم نبود که جوشن بپوشن بلکه این اینا هم خیلی گرم بود در زیر و تابش آفتاب که گرم میکرد انسان رو و هم سنگین بود و خب این کشیدن این فرسنگ ها در کشور خودی درست نبود و نارو می روشن تا وقتی که به میدان نبرد نزدیک بشن اون وقت بپوشن میبینیم که توس باره اینه که میپوشه لباس رو میپوشه توس با خون و دیده پراب بپوشید جوشن همان در شتاب اینان رو بپیچید توی فروت. دلش پرزکین و سرش تخار تخار استرواینده گفتان زمان که آمد برای کوه کوهی دمان سفختار توس هست کامد به جنگ تو با کار دیده نهنگ نه برو تا در دش ببندیم سخت ببینیم تا چیست ترجام وقت فرود جوان چیست شد با تخار که چون رز پیش آید و کارزار به جنگ برون مرز را دل دهند نه بر آتش تیز بر گل نهند یعنی گل را آتش بذارید آتش خاموش میشه چون این گفت با شاهزاده تخار که شاهان سخون را ندارند خار تو هم یک سواری اگر زاهنی همی کوه خارا زبان برکنی از ایرانیان نامبست سی هزار به رزم تو آیند و کوه سار میکردون. انانو من انداز تیر به دشت شو بر رنج بر خیر خیر بر خیر خیر یعنی بیوده اینجا دو بیتی که سرا یعنی داستان میگه جزو خود داستان نیست یا فردوسی گفته یا سرنده داستان رو خستیم که به زبان پهلوی بوده. سخن هرچه از پیش بایست گفت نگفت و همی داشت هم برنه هفت بیمای دستور ناکاردان و جنگ سود آمد و جان زیان یعنی دست برخیر خیر برخیر خیر یعنی بیهوده. اینجا دو بیتی که سرا یعنی دیگه داستان میگه جوزو خود داستان نیست یا فردوسی گفته یا سرنده داستان نخستیم که به زبان پهلوی بوده سخون هست از پیش بایست گفت نکفت و همی داشت اندر نه به و بیمای دستور ناکاردان برای جنگ سود آمد و جان زیان یعنی از دستور وزیر از وزیر بیمایه ناکاردان یه جنگ براش پیش اومد که در اون جنگ جانش زیان داد یعنی جانش از بین رفت همه ماهرویان به باره بودند یعنی کنیزکان خانومی ها و چینی نظاره بودند یعنی که زیر سایغون بودن بالای باره سایمون زده بودن از اون زیر نگاه میکردم از آن بازگشتن فرود جوان از ایشان همی بود تیر روان به گفتار امروز شرمش می مند. که حالا جلو اون دخترکان و این ها که دارن از بالا میان این برکرده به با و با گریزه و بیدهش بیاره چونین گفت با شاهزاده تخار که که جست خواهیمی کارزار نگر ناورتوس را نشکنی نگره میتوجه کن تو را آن به که اصفت کنی چون آمد سفهبت بر این کوه با بیاید کنون لشگرش هم گروه خدنگی بر را سفهبت بزد چونان که از کمان سواران سزد نگون شد سر بارگی جان بداد دل توس پرکین سر پرزباد به هشکره آمد به گردن سفر پیاده پرازگرد و آسیم سمین توس سفر سال ایران بود نباید پیاده باشه ولی از جون داده پیاده سفر رو پوش سرش گرفته که از پوش پش تیر نزنند سفر رو همواره در جنگ جروم میگیرند که از روبرود تیرنید این وقتی که سفر را با پشت میذاره یعنی خودش نشون میده که پشت دشمند کرده و این کار خوبی نبوده دو چیز گران بود بر سفردار توس یکی اینکه پیاده بیاد یکی که سفر پشت سرش باشه نشون این بینه که پشت دشمند کرده این خیلی خیلی این کاری بود که شرم بر رخ اومه امرد خیلی خیلی بد بود برای سفرد سالار ایران دو مرتبه برشتر که ها آمد به دردن سفر پیاده پرازگرم آسیم سر کواجه همیزد پس او فرود کواجه یعنی مطلک امروز مطلک کواجه همیزد پس او فرود که این پهلوان نبرداز نود گریدون سطوع آمد از یک سوار چه چمد در صفحه کارزار رستندگان خنده برداشتند نی دخترکان کون بالا بودند شروع کردن بخندیدن همی از ابر بگذاشت ین نعرهشون از ابر گذشت که پیش جوان یکی مرد پیر از افراز قلطان شد از بیم تیر سفه فرود آمد از سر برفتند گردان به که اکنون تو باز آمدی بهتر اینه که در نونا هنوم مد تو باز آمدی من پیشنهاد دادم که اکنون که باز آمدی اگر بخونیم درست در میاد که اکنون که باز آمدی هم درست به آب موجه رخ نباید شست باز پس از این یک بخشتی است که بی بیژن و اینجا یه رمز رو بشه گفتم که زر نماد توس نماد شهر توسه که طبقیت پایگاه ارتش ایران در حال سوران بود. وذسب نماد شهریست که نزدیک اوچان امروز بوده. و بیژ ناماد پژده چون پژنور بیژان کرد شده هستند. میین اینا همسایگانن، اووض زهرس میره و توس میره به کم م ها را تلیویزن آمازد تندی به درد به دادار دارنده سوگند خورد که زین را نگرد آنم از پشت اسب مگر کشته آیم بکینه زر عصب یعنی میرم یا این فروض رو یا اینکه ما من خودم پشته میشم اگر اجازه می دهید ما تا همینجا داستان رو داشته باشیم و چون تلفن های زیادی داریم ما که اینها رو لطف می میفرمایید می و سوالات زیادی داریم در پیامک که یکی از اونها در مورد ماه و خورشید پرسیده که من الان نمیتونم پیداش بکنم پرسیده که حالا این اگه من پیدرش بکنم که خیلی خوه هستش خب پرمک دیگه هستش که در مورد اینم هم نمیتونم این هم شبا این همه آینک آینک درسترش آینک آینکتون رو برای آه پیدا اون نمیتونم با تلاجب به صحبت با تلاجب به تو مطالب خیلی پراکنده هستش خیلی پراکنده هستن دور میشیم ما در مورد اسم پرسیدم مثلا پرسیدم پریسا چیه این که میخواستم الان بخونم این پرسیدم پریسا به چه معنیه پریسا یعنی پری پریسا پری یعنی بعد در موضوع... پری آسا یعنی پیلاسا نمیگیم تنی پیلاسای آسا همین پری... پریسایی یعنی کسی که همانند پریس بعد درود به شما خواهشمندم بگوید چند گونه بازی تازی در شاهنامه پیدا می شود نقصد این کسی که در این باژه پژوهش کرد روان شد ملوک شارا بحار بود او در سفشناسیش نیوش که 5 اینج درصد مونتا من وقتی که بیراش کردم شاهنامه رو می بینیم که در گفتارهای فیدوسی بیشتر از یک درصد نیست اگر هم نباشه ولی خست، نه اینکه که که به طور کلی نیست خست، منتا خیلی کم با بر با درود بر استاد سخن آی دکتر فریدون جن... جنیدی براز خسته نباشید مانده نباشید به شما مجری محترم میخواستم از استاد بپرسید آیا حقیقت داره که اصل شاهنامه مستوی و از ابونصر نصر بوده شاد باشید دختر بختیاری تو دختر باشید. پیشتر از فیدوسی چند نفر شروع کردن به در حقیقت شاهنامه یکی از این ها هم که دقیقی بوده منطقه این به هزار اما بیشتر از هزار هاست ولی اصل, اصل شاهنامه با گفتار فیدوسی این همه تنین و آوا داره موقعی که مادر ایران دقیقی رو کنار گذاشت و گفت ترزند دیگر هم فیدوسی. بس جنبه های عرفانی شاهنامه رو میخواستن محتر استاد فکرستن فنایی هستن شمایی که در حافظ و مولانا ما جنبه های عرفانی و زیاد میبینیم درود بر شما عرفان از دیدگاه مولوی آفیس که کنهی دیگر دارد که به هیچ وجه نمیتونیم ما هیچ سخن و هیچ گفتار و هیچ کتاب رو با شاهنامه مقایسه بکنیم گفتار فیدوسی در ستایش خداوند و های خداوند و برخورداری از خرد همه همچون آفتاب روشنه درهایی که در ارفان که, که زیر عبر میره و پشت عبر خودشونشون میده نه. ها روسن روشن همچون آلطوب شهنم ایما دو و دو باد مزید مخالن بارمانه استادی قالند که همسنگو بودم که خط عربی از خط فارسی گرفته شده و یک جای دیگه هم گفته که وزن عروضی از فارسی به شعر عرب رفته آیا استاد سعیدی به مد نظر دارن که برهان این بگوید رو به دست بده جاوید ایران زمین بخدا مثلا از ایران ایلام مزار مش خدا نه خدا به سرزمین ایران ایلام من اتاققا در گفتار امشب یک دقیقت صحنه ای رو نشون دادم که در کتاب زمینی شناخت و موسیقی ایرانی من اومده. و اون صحنه نشون میده که یک گروه هم نواز که با هم دارن می نوازند و آوازخوان داره همراه با ضرب می خونه. این نشون می که در ایران و باستان پنچ هزار سال پیش که اصلا نامی از کشورهای دیگر نبود ما شعر داشتیم و وزن داشتیم و آهنگ داشتیم و بعد کارهایی که از فارابی هست و شعران بعدی همه می بینیم که وزن شعر فارسی رو تن گفتند. گفتن به عنوان مثال نگار تازه مو کجایی تنه تن تن تن تن تن پوانا بود حق دانا بود تن تن تن تن تن تن بشنو از نیچون حکایت میکند تن تن تن تن تن این در گفتار مولوی هم توی دیوان شمس بارها و بارها تکار شده از جمله یکی از این ابیات رو منان بیاد دارم که من گفته است که من چنگ توام و بر هر اگه من تو زخم زنی من تنن تنم ببینید اینجا تن این تنن این فراموش این نشده وزن شعر فارسی تن, تن, تن بوده و بعد ایرانیانی که برای عرب دستور زبان فارسی نویشتن و از جمله شعراشون رو مرتب کردن اونها اف... به جاش افائیل رو ارزه کردن و گردن ما پیشتر از افائیل خبری نداشتیم درود بر اصطاد بزرگ آی دکتر جانهیدی زبان بویش مردم در عصر روسی فارسی کنونی بوده یا زبان دیگری شاد باشید پیروز باشید به درود مریم درود بر مریم خب ببینید که فیضوسی چه گفته دیگه مونتا در خراسان لحجه خراسانی بوده هم تو در بلوچستان در آزرباج در خراسان هر جایی لحجه دارن نشون داده میشه که این فیضوسی اینی که گفته فارسی دریه فارسی دریم هم فاصله بعد از پهلوی عشقانی ساسانی در ایران راهش شد با درود فراوان لطفا از آقای دکتور بپرسید شیر سر چه مفهوم دارد شنونده همیشه شما انوشیروان شیروان نصرتی از دشت موغان درود بر دشت موغان اون جایگاه سبز اون جایگاهی که خیلی خیلی زیباست و دل, دل آزربایجان هست من از شیر سر خبری ندارم ندیدم منطقه در بعضی از کمرها هست که به جای مثلا سر قوچ سر شیر میگذاشتم من نه پیکرش دیدم و نه جایی سراختانم آداش با سلام خدمت مجشه محسرم و استاد فریدان جانه ایدی میخواستم بدونم علت اصلی پاک شدن. تاریخ هخامنشیان از حافظه تاریخی مردم ایران و به و به ویژه شاهنامه چیه در واقع چرا ما ایرانیان باید برای دونستن جزیات تاریخ خودمون پناده داریم به کتاب غربی مثل کتاب های پلوتارک که آریان و دورههای های هخامنشی و از این منابع که غالباً هم قرد در مورد ما ایرانیان صحبت مطالعه کنیم. گرچه میدونیم که نشانه‌های از این دورهای تاریخی در حافظه تاریخی ایرانیان باقی مونده مثل فادشاهی داراب،, داراب دارای داراب و یورش اسکنده خب شما این رو نخودتون گفتید و این داراب و دارا رو ندارای دارایان رو نخستین بار من در سی, سا سی یک سال پیش در کتاب زندگی مهاجرت آریویان اشاره کردم اروپایان گمان نادرست هستند که شوان از حقامسیان خبر نداره شما بزرگترین خبر علمی جهان باستان کشیدن کانال سوئیس بوده که در شوان ما میبینیم هست حامون برای آمد به کوهی رسید یکی بیتران جرف دلیاب بدید بفرمود که هندو از رومیان سرافراز، کارازموده رگان، کشایندسان آب دریا دری رسانند رودی به هر کشوری این خبر کانال سوئد که بزرگترین کار علمی اون زمان بوده در شنامه ما است چطور به ویژه در شنامه از حامشان یاد نشده اما اگر از ریزکاری های تاریخ دوران حقامتشی یاد نشده این گناه برگردن اسکندر گجستک هست که تمام دانایان ما رو کشت تمام کتابای ما رو آتیش زد همه مدارس همه دانشگاه ها همه رو از بین برد همه رو سخت همه رو تباه کرد خب با این حال با اینکه این کار توسط اسکندر مغلونی شده باز در شهنامه راجبه دارای داراییان ما سخن داریم نه اینطور نیست در تاریخ گردیزی مثلا یک موضوع درباره دارا نوشته نوشته که میخبر درم نهادن در زمان شد ما میدونیم که خود یونانیان هم گفتن که اولین بار در زمان داریوش سکهها رو مهر زدن. یعنی نقش روی زر و روی سیم در زمان او بود در زبان فارسی باستان میگم درنیه که در فارسی شد دینار این واژه در زبان سانسکریت بود هرنیه در زبان اوسای زرنیه زرنیهی وسای شد زر درنیهی فارسی پاستان شد دینار اینا که کتاب های ما کمان بیش هست اما گناه از اون ابر تیره خاکالود پر دود پر پیوت است که اسکندر مقدونی در این خاک زیبای ما برکروند درود بر شما و استاد بزرگی هستم بپرسم استاد نوشته ای درباره ایران دارن یا نه دوم این که رودکی که به عنوان پدر شعر فارسی هست آیا درست درست. آیا درسته که رسم خط پهلوی رو عوض کرد من همه این کتاب هم در ایرانه من تحجیب میکنم میخواب خودم سی یک کتاب به جز از ویرای شاهنامه داشتم همه درباره ایرانه و در برونی ها بودم پیرامون هشتاد کتاب که همه رو خودم ویرایش کردم و بر همه اونها خودم پیل گستارشم همه درباره مسائل فرنگ ایرانه و معلوم شید که این شمایده گرامی هیچ آگاهی با آشنایی با بنیاده نشه بود و کارهای من نداره من خاک ایرانم خاک پای ایرانیانم و برای ایران نویشتم هر چی که نوشتم. از جمله کتاب زندگی و ماجرد آریایانه که نخستین تفسیر برشامان بوده که این به داستان با نام داستان ایران از مراحل چاپ داریم امید دارم که به نوروز امسال یا ح اکثر به نم کتاب دا او من خاک ایرانم و در مورد کول خط در مورد میدهیم نه نه این چنین نیست دست خط رو ایرانیان خودشون کم کم برگردانشون میدونیم که در زمان عمرب به عبدالعزیز تا اون زمان دیوان های دستگاه خلاف به خط فبی نوشتیم میشد این خبری که خود اعار دادن دیگه اومرب به بدال وقتی که به خلافت عثمانی چون بسیار یعنی عرب دوست و عرب پر بود و عرب رو برقرار میدونیس دستور داد که همون منشیان همون کسانی که به خط فهلوی می از اون خطی برای عربی بنویسن و خط عربی از اونجا به دست منشیان ایرانی دستگاه خلافت امویون پیدا شد اما در این زمینه من یک پژوهش خیلی گسترده دارم که امیدوارم در امید به دست ایرانیان برسد یه سوالی هم مهمون برنامتی داشتم خواستم ببینم این دیف چه نسبت با که رو داشته منم خودم بچه لورستانم فامیلیمم دیویه پدر در پدر پهلوان بوده اونا می ما هم اوناییم فقط سوال گذاشتم داشتم که آقای دکتر با دیو با که خسرو چه نسبتی داشته خیلی مهمونم برنامه خود کیف سفرسادار بوده پدر لوران و بختیاریانه از این و بعد هم که آورنده ای که خصو از توورزان به ایران بوده نسبتی نذان با نخواتم از دوات جدی بکنشتم در مورد چهار مقاله همیزی تمنددی که در مورد فردوسیشون در این مقاله آوردن که شاهنامه تقدیم به محمود میشه می در این مورد توضیح به فریتش نشکیم این گفته خیلی دراز آهن خواهد بود، و نمیشه در به پاسخ که زمانم نداریم من در پیشگفتار گفتار شما فروسی تمام این گفتارهای نادرست کجر رو بیان کردم که به دستور مدود در سهر ثبومین امیر غزنوی خواستند که نامر هم مثل بقیه اشعاری که شاعرانو مزدور گفتن در ازش محمود برای این کار بیارن در پنج شاعر انتخاب کردند که اینها شاعرانو رو گسترده کردند و برای اون گسترله ها نام ناسودوده محمود رو آوردن تا به نام محمود بیاد من در این بار خیلی سخن گفتن شاد باشید و پیشکفتار شامان من رو بخونید همه اینا در اونجا هست درود بر شما ایرانیان بیداردن اگر ممکن است بگویی تخصص آقای دکتر جونهیدی چیست؟ یه وقتی از من که رشته شما چیه گذار برشته برشته است تخصص ایران تخصص نداشته شما ببینید وقتی که پور سینا پزشک بوده فیلسوف بوده ریاضیدان بوده فیزیکدان بوده شیمیدان بوده 31 سال پیش من این رو در برنامه بنیاد شبور نوشتم که این برای ایرانیان شایسته نیست که در یه رشته فقط پیش برن من این شاگری داشتم یک روز اومد و به من گفت داد که من در آمریکا درس خوندم و رسالم رو دادم گفتم رساله در مورد چی گفت یک انگلیه که در مری شپش قرار داده قرار داره جزین دیگه میکنه گفتم وای بر تو برای با این کار چه کاری میتونی به نفر جامعه بشری بکنی به غیر از اینکه این دانش در دست تراست ها باشه کننا از وجود استفاده دادن برای کارشون. من به دنبال تخصص نبودم ولی خب اگر بخوام بشمام به چند تا تخصص اما این کار رو نمیکنم کل لط کردید آ تو شاد باشید سپاسگگذارم از شما تحییه کننده برنامه آقای محمد رضا چ صدا آقایان علی تااهری و نوراح ایداری و نورا و آقای هیدری و آقایان همه اینگی پخرایان عبارگاسم مظاهری و آقای مهدی ابراهیمی همه اینگی برام آقای ستایش ستایشمنش ارتباطات آقای فروزنده آقای سید متزا حسینی و, و سرداروی و مجدی برام من همیت رزا هدایتی را سپاس از شما ایرانیان موفق و پیروز باشید